اللهم و بهی نستم و الله محمد در دو هفته گذشته که خدمت شما رسیدیم در این درس. جایگاه حدیث در علوم مختلف سعی کردیم که دو تا مطلب رو برای شما روشن کنیم مطلب اول مراد از جایگاه حدیث در علوم مختلف علوم مختلف چه علومیه که در حقیقت گفتیم که علوم مختلف می تونه حداقل سه دسته علم مورد توجه باشه یکی مطلق علوم که مطلق علوم بشری دستاورت های علمی بشر که این حتی شامل علوم فنی و مهندسی و تجربی هم قاعدتن میشه و اگر ما بیاییم یه مقداری این علوم رو محدودتر بکنیم میرسیم به علوم انسانی جایگاه حدیث در علوم انسانی میتونه مورد توجه و نظر باشه و اگر حتی این علوم انسانی رو یه مقداری محدودتر کنیم از یک جهتی جایگاه حدیث در علوم اسلامی میتونه مد نظر قرار بگیره و مراد باشه و بعدم توضیح بودیم که در این کلاس و در این ترم ما در درجه اول جایگاه حدیث رو در علوم اسلامی داریم بررسی کنیم معلوم نیست که حالا به علوم انسانی یا به علوم غیر انسانی هم برسیم ولی راجع به علوم اسلامی میتونیم جایگاه حدیث رو در چند علم بررسی کنیم این مطلب اول مطلب دومی که در این کلاس ها این شما گفتیم مسئله حوزه‌های حوزه های ورود حدیث یا خبر بود که یه مقداری بحث مبنایی کردیم که اصلا دین متکفل چیه؟ در چه اموری دین دخالت میکنه؟ در چه اموری دین دخالت میکنه؟ گفتیم که امروزی ها بعضی معتقدند که دو تا نگاه میشه بدیم کرد و برای دین و رسالت های دینی دو تا نگاه هم میتونیم داشته باشیم یک نگاه حداکثری یک نگاه حد اقلی اونایی که نگاهشون بدین نگاه حتی اقلیه احیانا اگر روایاتی در یک موضوعاتی ببینن حالا یا از اون روایات رو سلب میکنن یا فوقش میگن این نازر به یک شرایط اصر خاص خودش بوده و در زمان ما دیگه موضوعیتی نداره چه که مثلا برای دین یک فلسفه کلی در نظر می گیرن که دین آماده مثلا یک جهت کلی به ما بده یک فلسفه کلی رو روشن میکنه و الا مسائل دنیای و سیاسی و اجتماعی حلش به عقل و در اختیار عقل گذاشته شده در مقابل خب نگاه سنتی ما در واقع بر این موضوع مستقره که اتفاقا دین در مسائل بسیار زیادی یا دخالت میکنه یا رحنمود داره لاعقل رحنمود داره شاهدش چیه؟ شاهدش می که امروز وقتی ما به کتابهای حدیثی مراجعه میکنیم ما حدیث رو در موضوعات گوناگون میبینیم که وارد شده و محدثان شیعه و سنی از قرنهای قبل تا به امروز دستبندی های گوناگونی روی روایت دارن تا جایی که مثلا بعض از دانشمندان مثل بخاری در اهل سنت و برقی در شیعه یعنی این کاری که بخاری در عهد سنت کرده نظیرش رو برقی کرده در شیعه مجموعه روایت رو در حدود 100 موضوع دستبندی کردن که هر موضوعی رو هم یک کتاب مثلا کتاب السلات، کتاب الزکات، کتاب الحج و بسیاری از این کتاب هایی که در جوامه حدیثی دیده میشه حتی در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی واقعا ما روایاتش رو میبینیم جمعوری کردن و بهترین شاهد،, شاهد مثال این حرف من اینی که شما مثلا یه سری بذارید به بخاری صحیح بخاری رو ببینید اناوین کتب صحیح بخاری رو ببینید یا مثلا محاسن برقی اناوین کتب محاسن برقی رو ببینید یا حتی بعضی از کتاب های دیگه اما بحث امروز چون من این رو چند دقیقه گفتم عنوان حاصل درس های جلسات قد اما بحث امروز ببینید یکی از مباحثی که جزء مباحث به قول معروف مقدماتی و در این حال مباحث پایعی درس جایگاه حدیث در علوم مختلف هست اینه که این حدیثی که حالا ما میخویم جایگاهش رو در علوم مختلف بشناسیم اصلا اعتبارش رو از کجا به دست فوریه کسی ممکنه حالا ما نقش حدیث رو در فقه براتون بررسی کنیم نقش حدیث رو در تاریخ برای شما بررسی کنیم یک کسی بیا اصلا حدیث چه اعتباری داره و حدیث اعتبارش رو از کجا به دست میاره یه مقداری بحث در باره اعتبار حدیث خجیت حدیث و اساساً جواز استناد به حدیث و خبر جزء سرفصلهای های این درس پیشبینی شده به عنوان های مقدماتی یا چیزهایی که با حرفهای بعدی ما روی اون استواره. ولی امروز بحث من در ارتباط با انواع روایات و اعتبار سنجی روایاته روایات. در این زمینه ما یک تقسیم کلی داریم، در حوزه حدیث که این تقسیم کلی رو اول مطرح میکنن و اعتبار اونها رو توضیح میدن ببینید حدیث پژوهان فرق نمیکنه حدیث پژوهان شیعه و سنی اخبار و روایات رو در درجه اول بر دو قسم کردم. یکی اخبار و روایاتی که اونا میان متواتره و دیگری اخبار و روایتی که میگویند خبر واحده امیدوارم که شما فرق خبر متواتر و خبر واحد رو بدونید ولی عمده تفاوت خبر متواتر و خبر واحد برمیگرده به تعداد ناقلان اینا به ما میگن که اگر خبری ناقلانش اعداد ناغلانش در هر عصر و زمانه ای در هر دورهی در هر عصر و زمانه به قدری فراوان باشه که ما احتمال احتمال توانی اونها رو بر جعل حدیث منتفی بدونیم به این خبر میگن خبر متواتر چون تواتر یعنی نقل پیدر پید معنای تواتر مثلا این نقل تواتری یعنی این نقلی که با ذکر پی در پی همراهه این خبر خبر متواتر این تعریف خبر متواتر از نظر شیعه و سنی و همین تعریف در, در همه کتاب های مستلال حدیث وارد شد حالا خبر واحد چه خبریه؟ شاید بعضی فکر کنن واحد از یک میاد احد واحد. مثلا میگن خبر واحد خبریه که تعداد ناقلانش در هر دوره‌ای یک نفر باشه خب البته اگر خبری در هر دوره به وسیله یک نفر نقل شده باشه خود اینم خبر واحده ولی یکی از مصادیق خبر واحده اصطلاحا به چنین خبری میگن خبر مفرد یعنی خبری که راویش فرده راویش تکه اما تعریف علمی خبر واحد اینه که هر خبری که تعداد ناقلان آن ولو در یک طبقه به حد تواتر نرسد چنین خبری خبر واحده یعنی فکر کنید مثلا فرض کنید یک خبری تعداد ناقلانش در طبقه صحابه متواتره در طبقه بعدی که طبقه تابعین متواتره ولی مثلا به طبقه سوم که میرسه که بهش میگن تابعه تابعین دو سه نفر نقلش کردن به وسیله دو سه نفر همین خبر تو که بیشتر وارد نشده دو نفر سه نفر پنج نفر خلاصه تعدادی که عقلن میتونن تابع می کنن برای که چنین خبری از قول پیغمبر نقل کنند. خب به این خبر میگن خبر واحد بعد دیگه نباید کسی بگه آقا این خبر رو در طبقه صحابه 50 تا از اصحاب نقل کردن میون خوب باشه در طبقه طابعین هشتاد تا از طبقه این نقل کردن میون باشه ولی در طبقه بعد که میرسیم به طبقه طابعین چرا ناقلانش محدود میشه مثلا میشه دو نفر، سه نفر، چهار نفر براوری شرط تواتر مربوطه به تمام طبق نه یک طبقه دو طبقه یه بیشه. یا مثلا حتی اگر در یک طبقه ناقلان کم بشن و به حد تواتر نرسن استلاحا میگن این خبر خبر واحد اینو همه گفتن حالا سوالی که مطرحه اینه که فایده این تقسیم بندی چیه چرا حصولا ما دنبال خبر متواتریم چرا میان خبر را از قدیم تا به امروز بررسی می‌کنن ببینن اینجا چه مصادیق خبر متواتره یا جزء مصادیق خبر واحد فایده و فلسفه این تقسیم بندی چیه از نظر دانشمندان تقسیم بندی اخبار به خبر متواتر و خبر واحد یک خاصیت مهم داره اون خاصیت مهم اینه که اگر خبری ثابت شد متواتره یا از جنس متواتراته ما نسبت به مفاد اون یقین می که چنین چیزی از معصوم صادر شده ما یقین می کنیم یعنی خاصیت خبر متواتر ایجاد علمه استلاحاً یعنی خبر متواتر آور. ایجاد قط میکنه ایجاد قط او ینی میکنه از اون طرف خبر واحد ماهیتن زنیه یعنی خبر واحد چیزی جز زن به ما می میده، زن یعنی بهمان یعنی احتمال حتی اگر خبر واحد، سندش صحیح باشه کاملا باز هم باز هم حالا اگر خبر واحد سندش ضعیف بود که دیگه میزان زن و گمان ما برای که پیغمبر چه چیزی گفته یا امام چه چیزی گفته پایین ترم میاد یعنی زن خبر واحد ضعیف یک زن و گمان کمتری رو میتونه تولید کنه در ما نسبت به صدورش اما خبر واحد صحیح یه زن و گمان بالاتری رو میتونه کنه نسبت به صدورش ولی بالاخره خبر واحد صحیح هم زن نیست این مهمترین ارز کنم خدمتون فایدهیه که ما در تقسیم خبر به خبر واحد و خبر متواتر میتونیم به دست میرون حالا بعضی از دانشمندان برای این که خبر واحد رو تبدیلش بکنن به خبر متواتر چون بالاخره اگر خبر واحد به خبر متواتر تبدیل شد او زنه تبدیل میشه به یقین یعنی. برای که هرچه بیشتر تعداد متواترات رو ببرن بالا چون وقتی که ارز کنم خدمتون خبر متواتر شد ایجاد یقین میکنه ایجاد علم قطعی میکنه میان از یک درب جدید و با به جدیدی وارد میشن و اون اینی که میان میگن که خبر متواتر دو نوعه. یکی خبر متواتر لفظی و دیگری خبر متواتر معنوی ارکیه یه مقدار آمار و متواترات رو ببرن بالا بعد میگن خبر متواتر لفظی عبارت از است که در اون مثلا یه حکم شرعی یه مطلبی با الفاظ یکسان و متحد از ناهیه همه راویان نقل شده باشه این میگن متواتر لفظی یعنی مثلا فرض کنید پیغمبر فرمودن امنی تارک فیكم ثقلین کتاب الله و اهل میگم همه کسانی که حدیث سقلین رو از رسول الله نقد کردن حداقل اول حدیث رو با این عبارت نران کردن این متواتر لفظیه یعنی تعداد ناقلانش در طبقه صحابه فوق اندازه است در طبقه تابعین فوق شمارشه در طبقی تابیل فوق شمارشه، همه این مطلب رو با همین لفظ بیان کردن، نه چیز دیگهی. حتی اگر تو این قسمتش، ای قسمت بعد حدیث ممکنه الفاظش یه خورده فرق بکنه. ولی اول حدیث سقلین، امنی، تار کنفریک و کتاب الله و اطراتیه. حالا تو بعض از اقوال هم کتاب الله و سنتی. ولی مثلا دیگه اینی تارکون فی و سقلینش همینه دیگه غیر از این نیست یا مثلا به ادعای شیعه در روز قدیر پیغمبه فرمودن من کنتو مولا فحازا علیون مولا با همین الفاظ با همین عبارت این متباطر لفظیه بعد بگن متباطر لفظی بسیار بسیار کمه تعدادش معدوده شاد از هر هزار حدیث یک دونش هم متواتر لخزی نباشه پس بیاییم ببینیم متواترات معنوی چی وقتی میرسن به متواترات معنوی وقتی مصادیق متواترات معنوی زیاد میشه خوشبختانه متواترات معنوی یعنی چی؟ متواترات معنوی قدر مشترک و مسلمه چند خبر واحد یعنی مثلا ممکنه ما درباره مثلا نماز صبح که درکته سی تا حدیث داشته باشیم پنجا تا حدیث داشته باشیم هر کدام از اون حدیث ها در جای خود خبر واحد باشه از نظر تعداد راویان ولی برایندش مفهوم مشترکش قدر مشترکه این سی چهل خبره واحد روی موضوع اونی که شما به عنوان وجع مشترک این 30 40 تا می کشی بیرون این دیگه میشه متبادر معنوی چون واقعا هم اون به وسیله ده ها و صدها راوی باید بیان شده باشه در ادوار مختلف خب متبادرات معنوی چرا ما بالاخره می تونیم یک سری مزامینی رو از روایات شیعه و سنی در بیاریم و این مزامین مشترک ده ها خبر واحد باشه هر مزمونی قاعدتا میتونه با قید یقین ما به صاحب شریعت امام یا پیغمبر نسبت بدیم اما خبر واحد زنیه یعنی احتمال میدیم که پیغمبر اینو گفته باشه احتمال میدیم که امام اینو گفته باشه حالا احتمال احتمال بالا یا پایین احتمالات هر خبری فرق کنه چرا؟ برای که ما ده ها قسم خبر واحد داریم مثلا فرض بفرمایید ما یک اصطلاحی داریم به نام خبر مفرد یک اصطلاح دومی می داریم به نام خبر عزیز یک اصطلاح سومی می داریم به نام خبر مستخیز خب اینا هرزش خبره باید هم جز این که در خبر مستفیز مییم در هر قرمی در هر دورهی در هر نسلی حد دقل سه تو ناقل بره در باره خبر عزیز میگیم در هر ای در هر دورهی حد دقل دو تو ناقل داره در خبر مفرد میگیم خبریه که در بعضی از دوره ها تک ناقله حالا یا در تمام دوره ها تک بوده یا حتی تو بعض از دوره هاش تک, تک ناغله این خبر رو میگن مفرده خب معلومه ارزش حدیث عزیز از خبر مفرد بالاتره ارزش حدیث مستفیز از خبر عزیز بالاتره اینشون میده که خبر واحد خودش اقسام مختلفی داره ولی آنچه که در تمام مسئله خبر واحد مشترکه ای اینی که خبر واحد زنیه. یعنی احتمال صدورش میره. حالا با درجات بالا یا پایین با ولی احتمال صدورش میره. خب ما اینجا در بین دانشمندان اسلامی با یک سؤال جدی روبرو میشیم. این سؤال یک سؤال اساسیه. با فرض این که خبر واحد یک زنی، یک گمانی برای ما به وجود میاره آیا زن و گمان میتونه حجت باشه؟ آیا ما میتوانیم از زن و گمان پیروی کنیم؟ حجیت خبر واحد آیا برای خبر واحد ما میتونیم حجیت قائل بشیم؟ یا نه؟ خب وقتی که ما آیات قرآن رو نگاه می کنیم در بعضی از آیات قرآن تأکید می کنه که شما جز از علم تبعیت نکن یعنی قرآن ما رو ارجاع میده به علم به قطع، به یقین می فرماید ولا تقفو مالیسه لکه بهی علم جز از چیزی که بدان ایر نداری پیروی مکن خب این سریع به قرآن جریمه. در بعضی از آیاتم نهی میکنه از پیروی از زند یا به عبارتی پیروی از زند و اخلاق مشرکانه اعلام میکنه میگه مشرکان عقایدی دارم ولی در بسیاری از عقایدشون ریشه عقایدشون زند رو بمان مثلا فرض بفرمایید مشرکان قائل بودند که خداوند دخترانی دارد که حالا این ملائکه است ملائکه دختران خدا قرآن میگه ان الذین کفروا لا یسمون الملائکة تسمیۃ الانسا بعد میفرمایید ما لهم بهی من علم این یتبعونه الا و اینا که این عقیده رو دارن این عقیدشون که برای علم مبتنی نیست این عقیده شون بر زن مبتنیه و هیچ وقت ون جای علم رو پر نمیکنه، هیچ وقت ون جای حق و یقین رو پر نمیکنه که میفرماد فرماید این یا طبعه و این از زنن لایق نیمین حق شیعا زن که نمی جای حق و یقین رو در وجود آدم بگیره با توجه به این آیاتی که ما داریم دو تا مشرب در اسلام به وجود میاد در ارتباط با تعامل خبر تعامل با خبر باید یه مشرب, مشرب دانشمندانیه که اینا منکران حجیت خبر واحدن هم اینا می اصلا خبر باید حجت نداره و جید نداره چون خبر واحد منشه علم نیست چون منشه علم نیست صلاحیت برای عملم هم داشت شعار اینا اینه که الخبر الواحد لایوجه و علمن خبر واحد به علم منجر نمیشه چون به علم منجر نمیشه لایوجه و علمن ولا عملا مثلا در شیعه در مثلا قرن چهارم و پنجم در حوزه بغداد در حوزه بغداد ما دانشمندانی داریم از قبیل شیخ مفید سید مرتضا و پیروان مثلا شیخ مفید و سید مرتضا که اینا قائل به حجیت خبر واحد نبودن به اسطلاح میگن منکران حجیت خبر واحد در اهل سنت هم دانشمندانی داریم که حداقل در بعضی از بحث علمی خودشون اینا منکر حجیت خبر واحد بودن مثلا میگن ماوردی در کتاب الاحکام سلطانیه که طبق همین استدلال هایی که کردن. از اون طرف یه از دانشمندان ما که حالا اکثریت دانشمندان شیعه و سنی رو و شامل میشه اینا معتقده به حجیت خبر واحدن. و برای اثبات حجیت خبر واحد دلیل میارن سعی میکنن که یک سری عدلهی بیارم خب که حالا ما در جلسه امروز در ادامه حالا کلاس بعد از انشالله نماز عدله حجیت خبر واحد رو برای شما ذکر میکنیم مطابق عنوان مقدمه عقاید معتقدان به حجیت خبر واحد اینو ارزی کنیم آیا اینا معتقدن که خبر واحد حجیت داره به این دلیل که هر هرگز من همین الان برای شما گفتم گفتم که خبر واحد زنیه همم هم قبول دارد که خبر واحد زنیه در این اینا نمیخوان بگن خبر واحد به این دلیله که ما را به علم میرساند برکه اینا میخوان بگن که خبر واحد گرچه زنیه، اما شاره مقدس، شاره مقدس به بعضی از زنون، به بعضی از اعتبار میده، هوجیت میده. یعنی حتی سعی میکنن که منشأ حجیت برخی از ظنون رو از قرآن کریم اخذ بکنن یا مثلا فرض بفرمایند از لسان شرع اخذ بکنن بعضی هاشون هم میگن که حجیت خبر واحد رو عقل انسان میکنه یعنی گرچه خبر واحد ماهیت ظنیه اما اصطلاحا میگن سیره اوغلا اما سیره اوغلا در جهت اعتبار بخشی به خبر واحد ما حداقل انواعی از خبر واحد نمیگیم مطلق خبر واحد چون به ما خبر واحد ضعیف خواهیم داشت سیره اوغلا بر اعتبار بخشی به انواعی از اخبار واحد استقرار یافته علا ماهیت زنی خبر واحد در عمل وقتی که ما نزاع منکران خبر واحد با موافقان هجیت خبر واحد رو می یه جاهایی این نزاعها لفظیه یعنی احساس می که هر دو یه چیزی بگن یه جاهایی این نزاها نزاهای لفظیه که از موارد نزاهای لفظی که بگذاریم بخوایم آمار بگیریم زور موافقان حجیت خبر واحد میچرده عدله موافقان حجیت خبر واحد نسبت به مخالفان حجیت خبر واحد فزونی پیدا نتیجه این چربش ادله این میشه که مثلا از قرن پنجم هجری به بعد وقتی که ما در تاریخ اسلام نگاه میکنیم از قرن پنجم هجری به بعد دیگه سیره علما سیره فقها سیره متکلمین استقرار پیدا کرده بر حجیت خبر واحد اعتماد به خبر واحد علو رغم ماهیت زنیش از اون به بعد دیگه هر چی کوشش می‌بینیم اینه که برای خبر واحد شرط بذارن که اگر خبر واحد با این شرایط همراه بود ما بر اساسش فتوا می‌گیم یعنی کسی دیگه در اصل خبر واحد شک نمی‌کنه اینا رو شرط و شروطاش کار می‌کنه خب من الان بحثم رسید به عدله خجیت خبر واحد اول توی نیم ساعت سر کردم یه تاریخچه بگم یه داستان براتون تعریف بکنم که چی بوده چی شده متواطر واحد مونیکران موافقان الان رسیدم به اینجا که زور موافقان خبر واحد میچربه دیگه یه وقتی که میچربه سعی میکنن شرط و شروط برش بذارن میریم ان نماز رو اقامه می‌کنیم. برمیگردیم ادامه بحث رو خواهم داد. این چی روشن بشه؟ خب، خب، بسیار خوب. خوشم یم اونجا. حداقل این اپ خب بسم الله الرحمن الرحیم قبول باشه ان نماز و عبادات و اول وقت شما من در جلسه گذشته مختصری از نگاه و تعامل دانشمندان با خبر و روایت رو از نظر اعتبار بیان کردم راجع راجب خبر متواتر خبر باهی خاصیت این تقسیم که برمی به علماوری خبر متواتر و زنی بودن خبر باهی مسایلی گفتیم و اختلافات دانشمندان رو هم بیان کردیم رسیدیم به این نقطه که خبر واحد در مجموع حجت باشه معتبر باشه حالا ببینیم البته طرفداران حجیت خبر واحد چه ای برای حجیت خبر واحد ذکر میکنن برید در یک نگاه به نظر میرسه که ما چهار نوع دلیل بتونیم برای حجیت خبر واحد بیاریم یکی قرآن یکی سنت یا روایات یکی عقل یکی اجماع حداقل در شیعه معمولا ادله احکام به وسیله این چهار نوع دلیل جستجو میشه که معمولا میگن که باید سعی بکنیم دلایلی بیاریم یا از قرآن یا از سنت یا از اجماع یا از عقل ولی در موضوع حجیت خبر واحد به نظر دانشمندان دو تای از این منابع چهارگانه به عنوان دلیل نمیتونه استفاده بشه یکی مسئله سنت یا حدیث یا روایات تو اصلا ما می‌خوایم حجیت خبر واحدو ثابت کنیم اگر قرار برای اثبات حجیت خبر واحد یه خبر بیاریم به قول معروف این دور میشه خود این استلال اقیمی میشه استلال نباید اقیم باشه این یه مطلب که معمولا برای اثبات حجیت خبرواهد به خود خبرواهد نباید چند زد و شود. شده به اجماع هم باید گفت که در این زمینه در عالم اسلام اجماعی وجود نداره به خاطر که ما همی الان گفتیم که لاعقل در قرن‌های اولیه دو گروه بودن دانشمندان منکران و موافقان پس اصلا اجماعی این منعقد نمیتونه بشه بر حجیت خبر واحد بنابراین اگر قرار باشه دلیل بیاریم اینو اگر صدا میده یه دفعه بیارید بیرون دوباره بذارید سرجوش صداش رفت میشه اگر که قرار باشه ما دلیل بیاریم این دلایل در درجه اول یا باید دلایل قرآنی باشه یا باید دلایل عقلی باشه امدتاً ادله حجیت خبر واحد بازگشت پیده میکنه کنه یا به قرآن یا به عقله که عقلم استلاحاً میگن سیره اغلا در این خصوص طرفداران حجیت خبر واحد به آیاتی از قرآن این منده خوده هم دیگید شده این صدا آره. آره این به هر حال بواید من داره تقاضا یه میکنه می‌کنه بواید ولی یواش یواش برطرف میشه ناراحت نمیشه طرفداران حجیت خبر واحد به آیات مختلفی از قرآن استناد میکنن استدلال های اونها به طور مفصل در کتاب های اصول فقه وارد شده که ما یه مقداری شما رو ارجاع میدیم به کتاب های اصول فقه اما به طور اجمال یه بخشی از این استدلال رو من در حد ظرفیت و از خدمتون حوصله این کلاس و زمانی که این کلاس داره براتون میگن ببینید ما از آیات قرآن کریم حتی اقل از چهار آیه میتونیم استفاده بکنیم در اثبات حجیت خبر واحد یکی آیه نبع، در سوره حجرات این آیه آیه نبعه در سوره هجرات که میفرماید یا ای الّذین آمنو إن جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین این آیه رو میان آیه به دلیل کلمه نبعی که توی این آیه است إن جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا یکی آیه نفر که این آیه 122 سوره توبه است که میگه که و ما کانل مؤمنون لینصروا کا فلاولا نفر من كل فرقة طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجوا اليهم لعلهم یحذرون این آیه آیه نفر یعنی کوچ دینی یا کوچ علمی کوچ فرهنگی علتی که من گم کوچ دینی چون تو متن آیه میگه لیتفقهو الدین فلولا نفر من کل فرغتم تایفتم من هم لیتفقهو فددین دین. یعنی مسافرت به منظور آموختن علوم دینی لیتفقه و فکردیم سفم این ها یه که بهش آیه ذکر ای یا آیه ای سوال میگن هر دو میگن که دو جا در قرآن کریم یکی در سوره نحل یکی در سوره انبیاء میفرماید فسالو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون فسالو اهل ذکر این کنتوم ل آعلم این آیه آیه سوال یا آیه ذکر و چهارمین آیه ای که دانشمندان در اثبات وجودیت خبر واحد بهش استناد می کنند آیه یا آیات کتمان علمه که حداقل مهمترین آیه ای که مربوط به کتمان علم یا به عبارتی حرمت کتمان علمه در سوره مبارکه بقراس است میفرماید ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات ولا هدا من بعد ما بینناه الناس في الكتاب الہک یلعنو هم الله ویلعنوهم اللائمون که این آیه مربوط به حرمت کتمان علمه است یعنی اگر شما به یک دانشی رسیدی نباید که تماکونین باید این دانش رو ترویج کنی منتشر بکنی مخصوصا اگر از تو سوال کردن که تو میتونستی جواب بدی نباید کتمان بکنی خب این چهار آیه هست که ازش میشه استفاده کرد برای اثبات حجیت خبر واحد البته این چهار آیه بحث های مشترک داره و بحث های مستقل داره بعضیش بحث هاش مشترکه ولی برای مثلا آیه نفر و سؤال و کتمان علم بحث مشترک هم حتی میتونه داشته باشه ولی آیه نبع یه بحث اختصاصی داره در خصوص آیه نبع که معروف ترین آیه است حتی توی این تا آیه ما میبینیم که قرآن کریم به مؤمنین دستور میده که ان اکم فاسق به نبعین انتسیبو خومن به جهالتن فتسبهو علا ما فالتم نادمین ای مؤمنان اگر آورنده خبر که قاعدتا آورنده خبر یه نفره دیگه یا به عبارت میتونه یه نفرم باشه اگر آورنده خبر فاسق بود شما یه تحقیقی بکنید خب تحقیق کنیم که چی؟ برای چی ما تحقیق کنیم؟ تحقیق کنید که ببینید خبرش مطابق با واقعه یعنی از سهت برکرداره یا مخالف با واقعه یعنی از سهت برکردار نیست چون فاسق وقتی یک خبری میده به ما یک گزارشی به ما بده میده احتمال داره راست بگه احتمال هم داره که دروغ بگه جالبه حتی این آیه شریفه به ما نمیگه که اینجا اکن فاسقون به خبرن به نبعن لا, تقبل ب... لا تقبلون اینو هم نمیگه نمیگه اگر فاسق آورنده خبر بود اصلا قبول نکنید کنار بندرید اینو هم نمیگه میگه فتح بینون اینو میگه نمیگه یعنی شاید خبرش موافق حقیقت باشه خب اگر خبرش موافق حقیقت باشه ولو که ناقل فاسق باشه ما باید اهمیت بدیم شاید یه مسئله مهمی رو داره به ما میگه یه اختاری داره به ما میکنه راجبه یه چیز داره واقعا یه گزارش صادقی به ما میده دانشمندان اسلامی از این آیه حجیت واحد رو نتیجه گرفتن به دو طریق به دو طریق یکی اینکه از این آیه مفهوم بگیرن یعنی به مفهوم آیه استناد کنن دو اینکه از این آیه منطوق بگیرن یعنی به ظاهر و نطق آیه استناد کنن اونایی که از این آیه میخوان مفهوم بگیرن به این شکل مفهوم گرفتن که نهی قرآن یا امر و توصیه قرآن نسبت به خبر فاسق بیان شده برای ما خب حالا اگر آورنده خبر فاسق نبود عادل بود در حقیقت قرآن کریم نهی متوجه پذیرفتن خبر عادل نکرده یا در برابر خبر عادل امر به تبیین نکرده نگفته که اینجا مثلا عادلون بنوین فطب در حقیقت نسبت به مثل این که قرآن راضی باشه و قرآن اجازه داده باشه که ما خبر واحد راوی عادل رو بپذیریم و معتقد که تنها خطری که در جامعه اسلامی ممکنه پیش بیاد اینی که ما به خبر فاسخ ترتیب اثر بدیم، ولی ترتیب اثر دادن به خبر عادل که مشکلی نداره این در مورد خبر فاسقه که میگه تبیان کنید چون اگر تبیان نکنید ممکنه خبرش موافقه با واقع نباشه شما اقدام بکنید نتیجهش پشیمونیه چون میفرماید فتبینوا چرا انتوسیبو قومن به جهالتن فتسبهو هو ما فعلتم نادمین به شن نزول این آیه مراجعه کنید در شان نزول این آیه اومده که پیغمبر اسلام ولید بن عقبه رو میفرسن به قبیله بن المستلق که ایشون زکات جمع کنه اینم به دلیل اینکه با قوم ولید بن المطلب یک اختلافاتی از دوره جاهلیت داشت رفت دو سه روز یه جایی خودشو قائم کرد بعد اومد گفت که قوم بن المصلق زکات نمیدن زکات ندادن یعنی حکومت رو قبول ندارن یعنی اسلام رو قبول ندارن خب پیغمبر میتونه بر اساس این گزارش حتی خود شماحیه جنگ با بن المصلق بکنه این آیه که نازل شد پیغمبر فهمید که گزارشه ولی گزارشه درویده رفتن تحقیق کردن دیدن اصلا ایشون نرفته که اون بندگان خدا بخوان زکات بدن یا زکات ندن و این آیه برای ما موند با این چن و که عرض کردم به رابراین ایده از علما از این آیه مفهوم میگیرن چون میگن تخصیص قرآن به خبر فاسقه که تبیینو در مورد خبر عادل چه تبیینی در مورد خبر عادل قرائانی کردیم راضیه که مردم خبر عادل رو بگیرن همونطور که اقلا در بین هم میگیرن که آنو من راجب سیر اقلام توضیح میدن یه ادهی هم که از منطوق آیه استفاده کردن در حقیقت میگن که قرآن کریم حتی به ما نمیگه که خبر فاسق رو قبول نکنید میگه خبر فاسق رو تحقیق بکنید خب فلسفه تحقیق چیه؟ فلسفه, فلسفه تحقیق اینی که اگر متوجه شدید که فاسق در این خبر خودش دور نگفته حتی به خبر فاسق راست میشود ترتیب اثر داد. این راجع به آیه نبع اما آیه نفر که آیه معروف نفر نفر مستره یعنی کوچ کردن مسافرت کردن ما در قرآن کردیم درو کوچ و مسافرت داریم یکی کوچ و مسافرت به منظور جهاد فی سبیل الله است که میفرماید ان رو خفافن و سقالن که این امر به جهاده یکی هم نفر به منظور تحصیل علوم دینیه در نفر به منظور تحصیل علوم دینی که آیه 122 سوره ی توبه است قرآن کریم می‌فرماید که ما کانال مؤمنون علیان فرو کافه. نیازی نیست که همه مؤمنین در تحصیل علوم دینی از شهر و دیار خود کوچ کنند خب در اون زمان مرکز علوم دینی مدینه الرسول بوده در زمان ما مرکز علوم دینی یا حوضه های علمیه یا دانشگاه ها خیلی از شما از شهرستان ها بلند شدید اومدید دیگه خب مثلا یه نفر از سراوان اومده همه احالی سراوان بیرزن تو تهران برای تحصیل علوم دینی یا تحصیل علوم دانشگاهی برانه اصلا چنی چیز نیازی نیست ما کانال مؤمنونال ینفر و کافر. اما فلا وله من كل فرقه طائفه منهم خب چرا از هر اجتماعی یه طائفه ایش یه طائفه ای برای تحصیل علوم دینی حرکت نکنه که چی بشه که اولا لیتفقوا فی دین به در امر دین فقید بشن بعد اینو هم من عرض بکنم براتون که فقه در حال حاضر اسم یک دانشیه که ما میگیم قوه استنباط حلال و حرام یعنی فقه در زمان ما اسم یک علمیه که حد اکثر متکف حلال و حرامه اما تفقه در دین که در قرآن و در روایت اومده یعنی شناسی جامع هم شامل عقایدش میشه هم شامل اخلاقیاتش میشه هم شامل احکام و تکالیف شرعی میشه دین شناسی جامعه فراتر از علم فقه به معنی امروزینه قرآن میگه خب چرا از هر شهر و دیاری یه عده ای که قرآن میگه تائفه یک تائفه ای حرکت نمیکنن تا در دین، در امر دین شناسا بشن، فقید بشن و بعد برگردن به شهر و دیارشون مشغول انظار اهالی اون شهر بشن بلکه اهالی اون شهر را متنبه بشن میگه رو قومهم اذا رجعوا اليهم لانهم يهذر سوالی که در این آیه شریف مطرحه اینه که قرآن میگه که از هر شهر و دیاری خوبه تا برن علوم دینی رو بیاموزن سوالی که مطرحه اینه که طائفه در زبان عرب به چند نفر گفته میشه جوابش اینه که طائفه یک لفظ مشترکیه که بر کسیر و بر قلیل هر دو دلالت میکنه یعنی شما به کتاب مفردات راقب که مراجعه فرمایید اصلا حالا من قبل از این که بگم مفردات راقه میگم خود قرآن قرآن کریم میفرماید که وقتی که ایسا آمد برای هدایت بنی اسرائیل فآمنت لهو طائفتون و کفرت بهی طائفه یک طائفه ای ایمان آوردن یک طائفه ای هم کف ورزیدن خب اون طائفه ای که ایمان آوردن حد دوازده نفر بودند که هوا او ای که کفر ورزیدن امت بنی اسرائیل بودن امت بنی اسرائیل یعنی هزاران نفر بودن طایفه بر افراد کم و زیاد هر دو دلالت میکنه حتی اقل مصلاق طایفه یک نفره چرا؟ چون طایفه از تواف میاد دیگه یک نفر دور یک مطافی به چرخه نسبت به اون مطافیشه طایفه چون طایفه ریشش توفه دیگه که البته مثلا ما میگیم الهی دوره بگردم میخوام توجه شدید خودمونو به یک فردی برسونیم یعنی حتی اقل طایفه یک نفره که میتونه دور یک کسی بگرده دور یک مطافی به چرخه این برای شما با واژه تایفه آشنا بشید به کتابای لغت هم که مراجعه کنید تایفه در زبان عرب بر جمعیت کسیر و قلیل هر دو قابل اطلاقه به طوری که حتی اقل نفرات تایفه میتونه یه نفر باشه یعنی اگر از هر شهری یک نفر خارج بشه به منظور تحصیل علوم دینی بعد وقتی که مجتهد شد مرجع شد برگرده به سوی شهر خودش به این آیه عمل شده به این آیه عمل شده خب یک دو حالا فرض کنید من از شهر خودم خارج شدم اومدم در یک مرکز علمی مجتهد شدم برگشتم به شهر خودم که انذار کنم اون مردم اونجا رو خب مردم اونجا به من نمیگن تو گزارش هایی که به ما میدی خبر واحده یعنی اگر قرار باشه من بلنشم برم علوم دینی رو بیاموزم بعد برگردم به هدایت مردم اقدام میکنم اونا به من بگن که خب خبر تو که خبر واحده یعنی کلا امر قرآن به تفقه در علوم دینی لوس میشه در واقع لغوی میشه در صورتی که بار ما نتیجه بگیریم و قرآن کریم که حتی یک نفر حتی دو نفر رو تشویق میکنه که برید علوم دینه رو یاد بگیرید بعد برگردید شعر خودتون مبلغ بشید این پیش فرضش اینه که تعلیم یک نفر تعلیم دو نفر میتونه حجیت لازم رو داشته باشه که کار لغو نشود کار لغو نباشه خب این به صلاح اثبات حجیت خبر واحد با استفاده از آیه نفره که قرآنی سرش برمیگرده که ما اولا بفهمیم تا افه حتی شامل یک نفر دو هم میشه دوم که قرآن کریم گفته این انذار حدفداره یعنی این آدم باید انذار بکنه قومش هم باید بپذیرن متنبه بشن لينذر قومهم اذا رجؤ اليهم لعلهم يهزرون یعنی انذار فایده داره فایدهش اینه که اونا برحذر بمونن از خیلی از خطرها اما آیه سوال ببینید ما در قران کریم از یک سمت میبینیم که خدا به مؤمنین میگه فسلو از یک سمت می‌بینیم که خدای تبارک و تعالی به پیغمبر و ادعی از آگاهان میگه تبیین نور. هر دو هم با هم میخوره دیگه. به پیغمبر میفرماید و انزل الیک که لتبیین للناس. ما نوزلنا پس پیغمبر وظیفه تبیین داره. مردم چه وظیفه‌ای دارن؟ مردم وظیفه دارن بپرسن. از چیزهایی که نمی‌دانند بپرسند فسلوا اهل ذکر ان كنتم لا تعلمون این اهل ذکر، این اهل الذکر یعنی چی یعنی مطلعان مطلعان گاهی در شیعه طبق بعضی از روایت اهل ذکر تفسیر شده به اهمه این گونه تفسیرها از باب تخصیص نیست یعنی فرض نفرمونده اگر که یه وقتی روایتی دیدید که امام صادق علیه السلام می نحن نحنو احل و نحنو المسئولون اهل الزکر ما نید یعنی مردم باید به ما مراجعه کنن ما باید مورد سؤال مردم قرار بگیریم ببینید این گونه روایات ازباب تخصیص نیست حواستون باشه نمیخواد بگی که آیه مخصوص اعنه است علتشیه علتشینی که این آیه فسعل و اهل از ذکر این کنتم را تعلمون در تا سوره وارد شده یکی سوره نحل یکی سوره انبیا سوره نحل و انبیا هر دو مکیه در مکه اصلا مسئله امامت و ائمه و مرجعیت ائمه هنوز مطرح ها نبوده دیگه بعد بدونیم دیگه این مسئله رو در مکه اهل ذکر رسول الله بوده اهل ذکر علمای دینی بودن حتی علمای یهود و نصارا چون اونا میتوننن به نفع رسول الله شهادتی بدن چون نشانه‌های پیغمبر رو در کتاباشون دیده بودن اهل ذکر مطلعین بودن اهل اطلاع خب همین آیه در طول تاریخ استفاده‌های خاص رو داره یکی از مصادیق اهل ذکر در هر زمان علما علما دینی خب علمای دینی نسبت به مردم معمولی اهل ذکر در طول خیلی چیزا رو می‌دونن معلمان نسبت به شاگردان شما یه مسئله رو نمیدونید میاد از من سوال میکنین. آی محارف شما معنی نایر برای محرودید یعنی شما فکر میکنید من جز اینم دیگه جز و اهل ذکرم دیگه پس در حقیقت اهل و میتونن استادان باشن نسبت به شاگردان علمای دینی باشن نسبت به مردم در هر زمانی بعد حالا جالبه این اهل و اختصاص به علوم دینی حتی نداره فرض بفرمایید من مریض شدم مگر به پزشک مراجعه نمی کنم در بیماری خودم مگر نسخه پزشک رو اطاعت نمی کنم خب واقعا من اگر مثلا ناراتی قلبی پیدا کنم به ناراتی مهده پیدا کنم من تو تخصصی ندارم در پزشکی در قلب، در میده. من دیرم دنبال اهل و ذکرش، متخصصش اونجا هم وقتی رفتم چون و چرا هم حتی با پزشکم نمیکنم نسبت به نسخه ای که میپیچه وفادارم در عمل به اون نسخه یعنی میخوام بگم این بحث فسال و اهل الزیت این کنتم لا تعلمون حتی اختصاص به حیته مسائل دینی هم نداره خب حالا اگر ما به صاغی برخورد کنیم و به اهل و ذکرش مراجعه کردیم یعنی ما تشخیص دادیم فلانی آگاهی اختلا داره باهاش مناقشه میکنیم که تو خبرت خبر واحده هرگز اگر بخوایم مناقشه بکنیم که تو خبرت خبر واحده تو اهل و ذکر ممکنه یه نفر باشه ممکنه دو نفر باشه خب اینا گزارششون از اطلاعاتی که به ما میدن خبر واحده دیگه باشون مناقشه میکنیم که شما خبر واحده یعنی میشه قرآن کریم ما رو تشویق کنه که در هر زمینه که نمیدونید به آگاهش مراجعه کنید از اون طرف گزارش و اون آگاه هجیت نداشته باشه که لغفی میشه این امر قرآن امره به لغفی میشه قرآن کریم منظهه از اینکه امر به لغو کنه دعوت به بکنه قاعدتا وقتی قرآن در یک قضیه ای امر میکنه فرع بر حجیت اون گزارش صاحب خبر اینم استدلال به آیه سوال یا آیه ذکر اما آیه کتمان علم ما در این زمینه هم آیه داریم هم حدیث داریم راجع به کتمان علم آیش رو براتون خوندم در سوره مبارکه بقره بود خدای تبارک و تعالی میفرماید اون‌هایی که حقایق رو که ما در قالب کتاب و سنت به هدایت و هدایت نازل کردیم کتمانش میکنن لعنت خدا و ملائکه بر اونها بود یکی از مواردی که ما میگیم خداوند لعن میکنه یعنی جواز لعن قرآنی نسبت به آلمان دینی که علم خودشون رو کتمان میکنه، این آلم ممکنه یک فرد باشه ممکنه یک دو نفر باشن سه نفر باشن مسئله اظهار علم برای یک آلم دینی که میتونه در قالب خبر واحد اتفاق بیفته وقتی حساس میشه که یک بدعتی در جامعه بخواد خلاصه پا بگیره پیامبر اسلام فرمودند اذا زهر البده فلی لعالمه انیوه علمه و این کتمه فعلیه لعنت الله یعنی این موافق با این آیه است این آیه یک کتمان علم موجب لعنته پیغمبر هم میفرماید کتمان علم عالم زمانی که پای یه بدعتیه و استقراری یه بدعتیه اعلام علم عالم آره بعد میگه که در روایت پیغمبر برخلاف اینه خب بعد آله بیاد بگیم در روایت پیغمبر برخلاف اینه سنت غیر از اینه که الان داره شایعه میشه میانو بهش میگن خبر تو خبر واحده اگر بهش میگن خبر تو خبر واحده که بدبخت نیمونه دیگه یعنی تو اظهار علمش مفید واقع نمیشه پس بنابراین باید اظهار علم ولو از ناحیه یک نفر اتفاق بیفته عمل لغف نباشه عمل مفید باشه این تا اینجا البته خاطری ای که من نمیخوام این بست برای هفته بعد بموره سعی کردم به فشردگی استفاده هایی که از این آیا برای حجیت خبر واحد میشه رو براتون بگم که حالا براتون گفتم اما سیره اغلا این سیره داستانش چیه؟ ببینید سیره اغلا از یک عرفی پرد بر میداره که در زندگی اجتماعی رایجه حالا من از یک عرفی که در زندگی اجتماعی رایجه برای شما خبر میدم به عنوان سیره اوحلا سیره اوحلا هیچ چیز نیست جز اون عرف حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی ما حالا من نمونه از این عرف رو برای شما میگم من میام خدمت شما میگم که من امروز فرض بفرماید در دانشکده الهیات بودم حالا به مناسبتی دیگه از ساعت ده تا دوازه جلسه داشتم در اون جلسه یه بخشی مطرح شد من که ناقله مثلا بخشی از کارهای امروزام هستم یه نفر هستم میان برای شما میگن شما موزه میگیرید در برابر من یا موزه نمیگیرید پاسخ اگر شما از من دروغی شنیده باشید و سابقه دروغی واقعا داشته باشید میتونید به خودتون احتمال بدید که این خلاف واقعی داره میگه اما اگر شما چند سال با من معاشرت داشته باشید و تا به حال دروغی نشنیده باشید عصر را بر صحت میگذارید نه اینکه محال عقله که من دروغ بگم چون بالاخره دروغو از یک جا دروغ گفتن رو شروع کرده این میتونه نقطه آغاز دروغ گفتن من باشه پس محال عقله نیست اما محال عرفیه نه محال عقلی یعنی تا وقتی که شما دروغی نشنیدید اصل اول اینه که با گزارش های افراد که خبر واحد داره حمله بر درستی و صحت میکنی این میگن سیره اغلا. سی پس سیره اغلا چیزی جز عرف به صلاح طبیعی زندگانی نیست آدم بر اساس این عرف دارن با هم تعامل میکنن شما این شد میگید خونه پدرتون از سوناسان کن. چه خبر میگید خب من تا ساعت هفته شب دانش کرده بودم بعد هم حتی ممکنه بگی خب درستون چی بود شما میگی درس من مثلا جایگاه حدیث بود شما نه برای این حرفایی که میزنید قسم میخوری نه برای این حرفایی که میزنید شاهد مییادید و نقلتونم نقل واحد نقل واحد خبر واحد این سیغه که علما میگویند که آنچه که بی اوغلا مرسومه میگن یکی از ادله خبر واحد استناده به سیره اوغلاست بعد میگن خود توضیح بده ده سیره اوغلا یعنی چی؟ میگن سیره اوغلا عرف حاکم بر زندگانیه افراد در تعاملاتشون با هم تا مادام که از یک دیگر دروغی و کذبی نشنیده باشن به گزارشهای هم اعتماد میکنن خب حالا یک راوی زمانی که میگه قال رسول الله یا قال صادق و یک روایتی نقل می کنه خب اون راوی هم در چاشو به همین عرف و همین سیره داره نقل حدیث میکنه نسبت به افرادی که باشستن به اختضای شغلی که داره به اختضای علمی که داره به اختضای علاقهی که داره به جایی که بگه امروز صبح من مثلا در بازار فلان قضیه رو شنیدم نقل بکنه میاد میگه که در فلانی کتاب از کنم خدمتتون این حدیث از امام صادق اومده یا اصلا میگه من امروز در مجلس امام صادق این مطلب رو از امام صادق شنیدم چون نقل حدیث ذکر خاطره یک که راوی از امام یا پیغمبر میکرده دیگه ما امروز تو مسجد بودیم رسول الله در اهمیت علم چلیم فرمیم به که بگیم ما تو بازار بودیم این رو خریدیم و شاهدی این اتفاقم بودم میاد پرده داره از حضورش در مجلس پیغمبر و یکی یک مخلیب رو شنیده مخصوصا اگر پیغمبر موظفش کرده باشه میگن رسول الله آده داشت که وقتی در یه مجلسی صحبت میکرد آخرش میگفت الان فلیوبلقل حاضر شاهد حاضران این مطلب رو ببخشید علا فلیوبلقل شاهد القاهد شاهد یعنی اون کسی که تو مجلس بوده شاهدان این مجلس این مطلب رو به گوش قایبان برسانند اون موقع دیگه یک ضرورت دینی احساس میکرد که بیاد مطلب رو بگه بعد کسی هم نمیگفت خب تو خبرت خبره واحده خب من آخرین جمعه ای که برای شما میگم که این جمله پیش درآمد در سه هفته آینده است تا الان حجیت خبر واحد ثابت شد به وسیله یک رشته از آیات و نیز سیره عقلا و دانشمندان معتقد به حجیت خبر واحد با این دل... دلایل خبر واحد رو میکنن می‌کنن علارقمی که الماور نیست دقت کنید اون تا اینجا یه بحث دومی هم مطرح میشه که اون بحث دوم رو الان طرح بحث میکنم تفصیلش بماند ان برای هفته آینده و اون اینه که حالا اگر خبر واحد وجته خبر واحد در موضوعات اوناگون میزان حجت بودنش مساویه گریم مثلا ما خبر واحد فقیهی داریم خبر واحد تفسیری داریم خبر واحد اخلاقی داریم آیا میزان حجت خبر واحد در تمام موضوعات یکسانه یا متفاوت این یه بحث جدیدیه ها الان امشب ما یک بحث عمومی کردیم درباب حجیت خبر واحد که انشاءالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه بحث بعدی تحقیق در میزان حجیت خبر واحد در موضوعات گناگونه که چون بحث نقش حدیث در علوم مختلفه خب یکی از این علوم فقه اما ما علم تفسیر هم داریم علم تاریخ هم داریم علم عقاید هم داریم این مسئله دوم دانشمندانه که انشالله اینو انشالله هفته آینده براتون وارد میشین الله سلالله علی سیدنا محمد و آله تا اللهم